ببینم آیا تا حالا احساس کردین که به ناحق قضاوت شدین یا متهم شدین؟ آیا تا حالا از دیگران انتقاد کردین یا اونها رو داوری کردین؟ عیسی به ما میگه با همون مقیاسی که ما دیگران رو داوری میکنیم داوری خواهیم شد. عیسی به شاگردانش شلیم میده که بسیر باشن. به دانشکدی کوچکه کتاب مقدس خوش اومدین. امروز باز هم به تعلیم ایسای مسیح در سرکوه که بخشی عملی از حالی میسا هست ادامه خواهیم داد چیزی که یاد میگیریم اینه که بسیار مهمه که ما تعالیم رو قبل از اینکه در زندگی دیگران بکار بگیریم در زندگی‌های خودمون به بگیریم حالا بیاید با هم به درس امروز معلممون گوش کنیم حکم نکنید تا بر شما حکم نشود زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانه‌ای که پیمایید برای شما خواهند پیمود و چون است که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 پای مال کنند و برگشته شما را بدرند. شش آیه اول از متا باب هفت رو براتون خوندم. وقتی به این باب می رسیم، به نتیجه گیری این تعلیم که اون رو معزه کوه می نامیم می رسیم. زمینه این تعلیم رو به یاد بیارید؟ جمعیت زیادی هزاران نفر در تبه های اطراف دریای جلیل گرده هم آمده بودند. عیسی در حالی که به هزاران نفر خدمت می کرد، متوجه شد که جسم انسان حتی وقتی پسر خدا باشی، نمی توانست تمام این خدمات را به تنهایی انجام دهد. عیسی در حالی که به هزاران نفر خدمت می کرد، متوجه شد که جسم انسان حتی وقتی پسر خدا باشه، نمی تونه تمام این خدمات را به تنهایی انجام بده. به همین خاطر، مرقس باب سه آیه هجده به ما میگه گه که او طی یک دعوت شخصی از شاگردان خود تا به بالای کوه گرده هم بیاد. که در واقع مقصود او ا بالاتر زمینهای اطراف دریای جلیل هست که هرچه دورتر میشدند شیبه رو به بالای بیشتری میگرفت در این زمینهای مرتفع او تمام تعالیم متا باب پنج شش و هفت رو بیان میکنه و الهیات اون تعلیم یا چهارچوب تعلیم این بود دوست دارید چطور جزئی از راه حل برای تمام مشکلات این جماعت عظیم باشید در این اولین گردهمایی مسیحی عیسی راه حل ها و پاسخ ها را میان خیلی عظیم مردم این دنیا به کار میگیره. هنوز هم این تعالیم به مانند همون گرده همایی اولیه با ما صحبت میکنه. هدف و استراتژی هنوز هم همان هست. ایسای مسیح سعی میکنه اون دسته از ما رو که ادعای شاگردی او رو داریم تبدیل به راه حل و پاسخ بکنه تا نمک این جهان و نور دنیا بشیم تا بتونیم بر مردم این دنیا تأثیر بذاریم در اولین قسمت تعلیم او درباره نگاه به درون و دیدگاه های ما صحبت میکنه. بعد در بزرگترین قسمت باب پنج به ما گفت که به اطراف خود نگاه کنیم و درباره ارتباطات صحبت کرد سپس در باب شش او اینطور گفت حالا به بالا نگاه کنی چون که شما هیچ وقت نمیتونید بدون نگاه کردن به بالا این دیدگاه ها رو در خود داشته باشید شما باید از خدا فیض بیابید وگرنه هیچ وقت در زندگی خود در جایی که باید باشید نخواهید بود در قسمت دوم متاباب شش عیسی بر روی ارزش های شخصی که نگاهش به بالا تمرکز میکنه اینکه چگونه یک دیدگاه مداوم و پایدار نسبت به بالا داشته باشید این چیزیه که در اولین قسمت از متاباب شش می میبینید اما در دومین قسمت از متا که اون رو مورد بررسی قرار دادیم عیسی درباره ارزش‌های شخصی صحبت می‌کنه که در این دنیا هست کسی که در بین مردم هست اما در عین حال این دیدگاه رو به آسمان رو کسب کرده چالش این تعلیم این هست آیا شما این انضباط روحانی رو که باعث میشه نگاه شما به بالا باشه داری و اینکه آیا شما آن ارزش ارزش‌های روحانی رو که ثمره انضباط روحانی دارید وقتی به باب هفت می‌رسیم به نظر میاد در اینجا نتیجه گیری میکنه این طور به نظر میرسه که او تعلیم اولین گردهمایی کلیسایی رو به یک نتیجه گیری میرسونه و حکم صادر میکنه ایده دعوت کردن از عیسی شروع شد به دعوت های بزرگ مسیح در کتاب مقدس توجه کنی دعوت مثل متا باب یازده سه آخر اونجا میگه بیایید نزد من تمامی زحمتکشان و گرانباران من شما را آرامی خواهم بخشید یوق مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت زیرا یوق من خفیف است و بار من سبک این دعوت بزرگی برای کسانی که متحمل بار هستند و برای بارهایشان رنج بسیار می‌کشند دعوت عیسی این هست نزد من بیایید نه به کلیسا یا بررسی کتاب مقدس بلکه نزد من بیایید و وقتی نزد من میایید من به شما آرامی خواهم بخشید و بعد در این دعوت او به اونها نشون داد که چگونه به کسانی که با دلی راست نزد اون میان آرامی می بخشه این یک دعوته اینجا وقتی به آخرین باب از این تعلیم که اون رو موعظه سر کوه می نامیم رسیدیم عیسی اون رو به نتیجه میرسونه و اون رو به شکل یک دعوت بیان میکنه کنه می بینید در آغاز این تعلیم چالش این بود کجا هستید؟ آیا در پایین کوه هستی؟ هنوز جزئی از مشکلات هستی؟ و آیا می خواهید همیشه جزئی از مشکل باشید؟ یا به همراه ایسا بالای کوه هستی؟ تعلیم گرفته و انضباط یافته و تبدیل به شاگرد شده برای اینکه جزی از پاسخ باشید؟ آیا شما جزئی از راه حل هستید یا مشکل؟ این همون چیزیه که در ابتدای این تعلیم با اون مواجه شدیم. حالا که به انتهای باب می رسیم. حال که با عیسی اوقاتی رو در بالای کوه بودیم سوالی نیست که آیا شما در پایین کوه هستید یا در بالای کوه تمام این تعالیم خطاب به کسانی که در بالای کوه بودند شاید اگر بخواهید اون رو برای امروز خود به کار بگیرید بگویید این تعالیم خطاب به کسانی که جزئی از کلیسای عیسی مسیح هستند خطاب به کسانی که ادعا می کنند شاگرد او هستند پیروان او هستند سؤالی که با رسیدن به باب هفت و پایان این گردهمایی مطرح میشه اینه شما چه نوع راه حلی هستید چه نوع پاسخی هستید چه نوع شاگردی برای عیسی مسیح هستید این قسمت زیبا با دو واژه شروع میشه حکم نکنید بسیاری از افراد در اینجا یک مکس طولانی میکنند و فکر میکنند که تمام این شش آیه میگه حکم نکنید وقتی نورافکن روحانی در قلب افراد شروع به فلش زدن میکنه خیلی زود این رو میگن حکم نکنید این چیزیه که کتاب مقدس میگه حکم نکنید پس بر من حکم نکنید اگه تمام این قسمت رو مطالعه کنید متوجه میشید که مقصود این قسمتی نیست این عبارات میگن ما باید قضاوت کنیم باید قضاوت کنیم شما باید خار رو از چشم خودتون در بیارید شما باید چوب رو از چشم خودتون بیرون بیارید تا بتونید ذرات گرد و غباری رو که در چشم برادرتون هست به وضوح ببینید پس این قسمت به ما نمیگه که حکم نکنید فقط میگه اول برادر خودت رو قضاوت نکن اول خودت رو قضاوت کن تا بعد بتونی این توانایی رو داشته باشی که زرات گرد و قبار رو از چشم برادرت بیرون بیاری بعد در پایان این قسمت قسمتی هست که درباره دادن یک چیز مقدس به سگ‌ها صحبت میکنه به عبارت دیگه میگه آنچه مقدس هست به ها ندهید و مرواریت های خود را پیش گرازان نیندازید به ما میگه که نباید مرواریت های خودمون رو جلوی خوک ها بریزیم این یعنی به ما میگه که تشخیص بدیم و قضاوت کنیم حقیقت و تمام حقایق روحانی برای هر کسی نیستن باید به این مسئله که افراد کجا هستند و از نظر روحانی چه کسانی هستند حساس باشیم پولس رسول در این کار عتیه خاصی داشت. به یاد داشته باشید که او در رساله اول قرنتیان باب نو چی گفته؟ ضعیفان را ضعیف شدم، برای یهودیان یهودی شدم، برای کسانی که زیر شریعت بودند یا شریعتگرا بودند، شریعتگرا شدم، آنانی را که شریعت نداشتند، غیر ها رو، افراد دنیوی رو، تا آنجایی که بتوانم شبیه اونها شدم. همه کس را، همه چیز شدم. تا به هر نهوی شده اونها رو نجات بدم این را به خاطر انجیل انجام دادم پولس در واقع به ما میگه که در روش خود برای بیان انجیل برای مردم بسیار دقیق عمل میکنه او به همه یک چیز نمیگه افرادی هستند که به مانند آیه 6 همچون سگ و خوک توصیف شدن این به چه معنا هست؟ به نظر من افرادی هستند که همچون سگ و خوک غیر روحانی هستند اونها علاقه ای به مسائل روحانی ندارن پس شما حقایق پرارزش رو برای چنین افرادی بیان نکنید این جمله به گونه‌ای که گویی منظور از سگ‌ها و خوکها بی‌ایمانان هستند اما این جمله به این معنا نیست که نباید هیچگاه انجیل رو برای بی‌ایمانان بیان کنیم شاید میخواد این رو بگه که کتاب مقدس برای کسی که ایماندار نیست تنها یک پیغام داره و اون پیغام اینه توبه کنید و به انجیل ایمان بیارید و نجات پیدا کنید پس از اینکه که شخصی ایمان میاره و توبه میکنه و نجات رو تجربه میکنه سپس خدا برای او 66 کتاب کوچک داره که سرشار از حقایقی هستند که خدا میخواد به مرد خدایی که میخواد کامل و بالغ بشه و هر کاری رو که خدا میخواد انجام بده توسط این کتاب ها اما وقتی شخصی در وضعیت ایمان و فیض نیست و خیلی هم نسبت به حقایق روحانی باز نیست، حقایق امیق خدا رو به اونها نگی. وقتی اونها حتی ایماندار نیستن، شما نباید درباره تعالیم امیق کتاب مقدس با اونها صحبت کنید کتاب مقدس به وضوح به ما میگه که اونها اون رو جهل میدانند اگر اونها افراد روحانی نباشند نمیتونن حقایق روحانی رو درک کنند چون حقایق روحانی به شکل روحانی درک میشه. پولس در اول قرنتیان به ما میگه که تنها کسانی که روح القدس رو دارن میتونن حقایق روحانی رو درک کنن. این قسمت همونطور که میبینید نمیگه حکم نکنید. هیچ وقت حکم نکنید. مقصود عیسی در این عبارت بی این نبوده. من شخصا معتقدم که سوالات ایسا آمیخته به شوخی نیست هست. او میگه چرا همیشه به دنبال ذرات چوب در چشم برادر خودت هستی در حالی که این چوب رو همیشه در چشم خودت داری. خودت آیا این تصویر خندهداری نیست؟ این شوخ طبعی او رو میرسونه. کسی رو می شنسم که در مورد شوخ عیسی ایسای مسیح کتابی نوشته. عیسی در قالب بسیاری از جملات شوخ طبعی خودش رو نشون داده. جملاتی مثل پشه را صافی می کنید و شطور را فرو می برید. بسیاری از استعاره های او به نظرم خندهدار هستند. چیزی که او میگه در واقع اینه ارتباط انسان ها با هم یک خیابان دو طرفه است. در آیه دو از این قسمت عیسی میگه میار شما برای قضاوت در مورد دیگران هرچه که باشه تعجب نکنید اگر اونها این میار رو برعکس کردن و برای شما استفاده کردن. به عبارت دیگه اگر مردم رو زیر زر بین نگاه کنید و از تمام جزئیات انتقاد کنید و اگر فکر کنید که آنها با یک تلسکوپ شما رو نگاه میکنن و تنها مشکلات بزرگ شما رو میبینن پس خیلی نادان هستید. اگر دیگران رو زیر میکروسکوپ بگذارید نباید تعجب کنید از اینکه آنها هم شما رو زیر میکروسکوپ بذارند و قدرت اون رو حتی بالاتر ببرند اگر دیگران رو با یک تلسکوپ ببینید اونها هم شما را با تلسکوپ خواهند دید و احتمالا شما این را بیشتر دوست خواهید داشت اما شما هر کسی رو زیر میکروسکوپ بگذارید تعجب نکنید از اینکه آنها هم شما رو زیر میکروسکوپ بذارند. روش مثبت اون رو میشه اینطور بیان کرد هرچقدر مقیاس سنجش شما از دیگران هر طوری باشه احتمالاً اونها نیز از همون مقیاس برای سنجش شما استفاده خواهند کرد این یک استعاره یا اصطلاح بازاری هست در بازار این جوز عرف بازار بود یک معیار بود معمولش اینگونه بود در هر چیزی بیاید فرض کنیم که شما در بازار قله فروختید و درست کنار شما کسی داره جو میفروشه. اگر متوجه این بشید که پیمانه فروش ما کمی کوچکتره این بود که اگر آنها از شما قله خریده باشند، شما هم بخواهید در مقابل جو بخرید آنها میگفتند، برو پیمانه فروش خودت رو در بیار و در حالی که از ما خرید میکنی، ما هم از همان پیممان که وقتی از تو قله خریده ایم استفاده کردی برایت بریزیم. این وضعیت بازار آن روزگار بود اما، این موضوع در ارتباطات انسانی هم صادقه امروز هم مردم میگن از هر دست بدی به همون دست هم میگیری به هر مقیاسی که شما به مردم بدید اونها هم به همون مقیاس به شما خواهند داد پس تعجب نکنید هر چقدر که شما به آنها بدید آنها هم به همان اندازه به شما خواهند داد اگر از پیمانه‌ای برای دادن به آنها استفاده کنید آنها هم با همان پیمانه به شما خواهند داد این قانون زندگیه و عیسی در بحث خود این رو به کار می گیره عنوان مثال او در لقا باب 6 این موضوع رو تعلیم داد اگر بدهید به شما داده خواهد شد کامل پر لبریز زیرا ارتباطات در زندگی همچون خیابانی دو طرفه هست هرچی که از خیابان ارتباطات زندگی بالاتر بره همون هم از خیابان ارتباطات انسان پایین خواهد اومد عیسی که این حقیقت رو بیان کرد حالا این سوال رو مطرح میکنه که بسیار داره. از اونجایی که شما این تکه چوب رو در چشم خود دارید این الوار رو توی چشمتون دارید چرا فکر می کنید که این مسئولیت وظیفه و یا دعوت شماست که برید و پر کاهی رو که در چشم دیگران هست در بیاری این تمثیل خنده‌داری اما بسیار واقعگرایانه است هر شبانی در جماعت ایمانداران خود چنین افرادی داره همه ما بدون شک چنین افراد منتقد افراطی رو میشناسیم. اونها اونطور رفتار می کنند که گویا خدا اونها رو برگزیده تا حاکم و یا ترازویی برای همه ما باشن. این سوال از موسا هم پرسیده شد. چه کسی تو را حاکم بر ما تعیین کرده؟ من خودم هر وقت با چنین افراد منتقد افراطی برخورد می کنم، به این موضوع موضوع می کنم. تمام هدف اونها اینه که به شما بگن مشکل دیگران چیه. اونها در این زمینه متخصص هستند. بعضی ها رو می شناسم، حتی شبانان و واعظین که تمام پیغام اونها همینه. در حقیقت اگر اطرافیانشون کم خطا باشند اونها دیگه موضوعی برای موعظهشون ندارن اما انجیلی نیست انجیلی که ما معموریت داریم اون رو موعظه بکنیم در مورد اشتباهات دیگران نیست این بسیار داره، چون هر کسی میدونه که یک منتقد افراطی مشکل داره عیسی در اینجا دو سوال مطرح میکنه چرا انقدر منتقد افراطی هستید و بعد این سوال رو پرسید با این کار چگونه انتظار دارید که مو اثر شوید چون است که خس را در چشم برادر خود می‌بینی و چوبی را که در چشم خود داری نمی‌بینی این سؤال اول او هست که در آیه سه دیده میشه و سپس در آیه چهار میگه چگونه به برادر خود میگویی اجازه بده تا خس را از چشمت بیرون کنم در حالی که چوب در چشم تو هست بعد از اون عیسی میگه ای ریاکاران در اینجا هم همون ترتیب رو می‌بینید که اول و بعد دوم ما در باب پنج گفتیم که اول خدا سپس این تغییر شگفتانگیز رو در ترتیب می‌بینید وقتی عیسی گفت که اگر می‌خواهید نزد خدا دعا کنید و با برادر خود ارتباط خوبی ندارید یا اینکه برادر شما با شما خوب نیست قبل از هر چیز باید نزد برادر خود برید و با او آشتی کنید بعد بیایید نزد خدا و دعا کنید این بسیار زیبا است اول برادرتون و بعد خدا حالا در اینجا به ترتیب ها توجه کنید اگر شما در چشم خود چوبی دارید و در عین حال تلاش می کنید که ببینید مشکل برادرتون چیه عیسی میگه اول این چوب رو از چشم خودت در بیار مشکل خودت رو حل کن بعد از اون راحتتر میتونید خاری رو که در چشم برادرت هست در بیاری بیش از هر چیز مشکل خودتون رو حل کنید بعد از اون راحتتر میتونید خاری رو که در چشم برادرتون هست در بیاری. بیش از هر چیز مشکل خودتون رو حل کنید و سپس راحتتر خواهید تونست تکه چوبی رو که در چشم برادرتون هست ببینید و در بیارید. اول چشم خودتون بعد چشم برادرتون ببینید مقصود اینجا این هست اول بر خودتون حکم کنید و بعد بر برادرتون نمیگه قضاوت نکنید هر کسی در چشم خود خسی داره و باید به یکدیگر کمک کنین تا این ها از چشمانمون بیرون بیاد اما حقیقت مسلم در اینجا اینه که چرا شما اینقدر نگران این هستید که بر برادر خودتون حکم کنید در حالی که هیچ وقت بر خودتون حکم نکرده اید؟ در اول قرنتیان باب 11 پولس رسول این رو میگه اگر بر خودمان قضاوت کنیم بر ما حکم نخواهد شد اما مشکل اینجاست که ما به ندرت بر خودمون حکم میکنیم اما در قضاوت کردن بر دیگران متخصص هستیم یادم در شهری بزرگ شدم که به خاطر دود زغال سنگ هواش بسیار آلوده بود مردم همیشه به شوخی میگفتند کافی صبح از خواب پاشی و بشنوی که پرنده ها به خاطر هوای آلوده سرفه میکنند روزی خاکستری توی چشمم رفت منظور از خاکستر همون تکه های کوچک زغال بود که در هوا میچرخید و درست میرفت توی چشم آدم بسیار دردآور بود چون چشم رو میخراشید هیچ وقت اون رو فراموش نمی کنم. تمام مدتی که اون تکه زغال توی چشم من بود و فکر میکردم که چطور میشه اون رو در آورد وقتی چیزی توی چشمتون میره تمام فکر و ذکرتون اینه که اون رو در بیارید محال که شما این مشکل رو با چشم خودتون داشته باشید اما در عین حال به اطراف نگاه کنید تا علاج چشم دیگران رو بکنید به همین خاطره که این یک مسئله بسیار قوی هست اگر این موضوع از بود فیزیکی درست باشه و میدونید که درست هست اگر تاکنون در چشم شما چیزی رفته پس از بعد روحانی چرا شما این کار مزهک را انجام میدید و دائما چشمتون به اطرافه که بخواهید از دیگران انتقاد بکنید در حالی که در تمام این مدت در چشم شما چوبی هست تعلیم واضحه کاربرد واضح این تعلیم اینه ای ریاکاران، ابتدا خود را قضاوت کنید و بعد به طور واضح میتونید ببینید و به قصد کمک بر برادر خود حکم کنید به ما گفته شده که به گناهان خود اعتراف کنیم و برای هم دعا کنید. فراموش نکنید که اعتراف چیه. اعتراف به معنای سخن مشابه یا موافق هست. پس برادر من میاد و میگه کاری که کردی اشتباه بود. بعد وقتی با او موافق باشم اعتراف میکنم و میگویم درست میگویی. کاری که کردم اشتباه بود. این یک اعترافه. ما باید در بیرون آوردن این خسها به همدیگر کمک کنیم. اما ببینید وقتی شخصی با ذهن انتقادگر به اطراف نگاه میکنه بر همه واضحه که این شخص مشکل داره عیسی با این تمثیل این ریاکاری رو به شکلی تنزگونه بیان میکنه به نظر من با همین فهوای سخن آیه شش از این قسمت به ما ثابت میکنه که مقصود عیسی این نیست که قضاوت نکنید او میگه تیزبین باشید در تعامل با دیگران تیزبین باشید شاید به طور خاص با افرادی که در پایین کوه هستند از بود روحانی هر کسی آماده شنیدن هر چیزی نیست. عیسی با پیلاتوس صحبت کرد، اما او با هیرودیس صحبت نکرد. عیسی با زن سامری که سر چاه بود به یک روشی صحبت کرد و با اون جوان ثروتمند با روشی دیگر. او حتی با نیقودیموس با روشی دیگه سخن گفت. او به تولد تازه اشاره کرد. نیقودیموس تنها کسی بود که عیسی براش از تولد تازه سخن گفت حتی یک استاد علوم دینی هم نتونست این موضوع رو متوجه بشه این موضوع رو میتوان در باب سدی. در باب بعدی عیسی با این زن سامری ساده گناهکار صحبت میکنه اما با اون زن درباره تولد تازه صحبت نمیکنه بلکه با او درباره آب صحبت میکنه زیرا که جسم اون زن تشنه است و این تنها نمادی بود که میشد اون رو به تشنگی درونی ربط داد و نظر میرسه مقصود عیسی در آیه 6 در واقع این هست حالا تیزبین باشید در ارتباط خود با دیگران چشم بسیرت داشته باشید هر چیزی را به هر کسی نگویید پیش از اینکه کسی رو خدمت روحانی کنید باید زمینه ای از جایگاه روحانی او در ذهن داشته باشید به نظر من اگرچه عیسی در پاراگراف اول به نتیجه میرسه او به ما گفته که به درون نگاه کنیم و به اطراف نگاه کنیم و به بالا نگاه کنیم به نظرم حالا در این قسمت آخر در حالی که این تعلیم رو به آخر می‌رسونه نتیجه رو در قالب یک حکم بیان می‌کنه در نگاه به درون خود تعهد داشته باشید قبل از اینکه به درون خود نگاه کنید به اطراف نگاه نکنید قبل از اینکه به اطراف نگاه کنید باید درون خودتون رو ببینید باید قبل از اینکه بر دیگران حکم کنید بر خودتون حکم کنید پولس به تیموتاوس گفت خیشتن را و تعلیم را احتیاط کن و در این امور قائم باش که هرگاه چنین کنی خیشتن را و شنوندگان خیش را نیز نجات خواهی داد این اولین باریه که شاگرد به باشگاه من اول میپیونده یک سرود قدیمی میگه نبواعظ و نه خادمان من هستم ای خداوند که در حضور تو دعا میکنم وقتی سخن از نیاز به داوری یا آزمایش روحانی میرسه ابتدا شما هستی باید پیش از اینکه بر دیگران حکم کنی بر خودت حکم کنید. اما شما میتونید در حالی که ایسا این تعلیم رو در قالب یک فتوا بیان میکنه همه این مباحثات رو این گونه خلاصه کنید. او میگه حالا از شما دعوت کردم که به درون نگاه کنید. یک بار دیگه میخوام از شما دعوت کنم قول بدید که به درون خودتون نگاه خواهید کرد. اول از همه تعلیم مرا در زندگی خودتون بکار گیرید. بعد از اون میتونید برای دیگران هم اعمال کنید. خب باز هم وقت ما به سرعت تموم شد. متشکر که دانشجوی وفاداری بودیم و با ما در دانشکده کوچک کتاب مقدش همراه شدیم. امیدوارم این درس ها به شما کمک کنن تا در ایمانتون رشد کنین و یاد بگیرید که کلام خدا رو در زندگی روز به کار بگیرید. دعا میکنیم خدای ما به شما حکمتت کنه تا یاد بگیرید هر روزه با فیض خدا خداوندمون رو خدمت کنید. زمن اینکه که یاد می گیرید، تعالیم اون رو در زندگیتون به کار ببرین. ترتیبی بدین تا در جلسه آینده نیز در ادامه این درس ها با ما در دانشکده کوچک کتاب مقدس همراه باشین.